تو همیشه در فزون باد رویت همه سال لالگون باد اندر سر ما خیال عشقت هر روز که باد در فزون باد هر سر که در چمن در در خدمت قامتت نگون باد چشمی که نفتنه تو باشد چون گوهر اشک غرق خون باد چشم تو ز بحر دل در کردن سهر زوف و نون با. هر جا که دلیست در غم تو بی سبر و قرار و بی سکون باد قد همه دلبران عالم پیش علف قدت چون نون باد هر دل که ز عشق توست خالی از حلقه وصل تو برون باد لعل تو که هست جان حافظ دور از لب مردمان دونبا